مجرد ها <تصفيق> نویسنده فرهاد توحیدی بازیگران محمد رضا فروتن در نقش منوچه، مریلا زارعی در نقش لادن عربشاهی، مجید سالحی در نقش شاهکار، الناز شاکر در نقش جاله، کاوه کاویان در نقش امیرحسین، منوشهر آذری در نقش بیدآبادی و آتیلا پسیانی در نقش اموناسه آهنگساز سعید انصاری تحیه کننده یدالله شهیدی کارگردان اسقر حاشمی سال ساخت 1383 سه جوون به نامهای منوشه شاهکار و امیر حسین مشغول شستن و تمیز کردن یک کارگاه است. شاهکار آب می پاشه امیر حسصه این منوچه هم شیشه ها رو تمیز میکنه. ش یه ضر آب برین جونه؟ شاهکار رو اموس این آب می پاشه. با چیکار میکنین؟وس منوچ بیا اقا منوچ؟ اتولوس نکنه. هیچ کمک میکنن باباه؟ شاهکار حالا با شیلنگ رو منوچه را می پاه. میاموشونم با و ازداد میگیرم با باید هم شوشه هم میشونم همون اوسعی کلاه شکاری وارد کارگاه میشه همه به سرعت میام سمت عمو خبردار میزن سلام عموزیان احبا من هم جای شما بودم کپ کم خروز میکنم به <تصفح> این تو دفتر کارستم دفتر امو ناصر و بسته های پول این هم عقب افتادتون تمام و کمال اما امروز هم حساب کردیم و من شمشم یه روزا من نشد یه لگت به پای شاهکار بزنم البته اینم قابل شمارو نداره هر چی کار میکنه مزهشم میگیره گرچه موافق رفتن رو از لندن کردینسن ولی خب اینم پدینه من برای خری سفرم فعلا این کارا چیه ما که پاداش خواستیم که حرفشم نزن آقا واسه میگه پاشین بریم الان امیر دبی بدجور تو فرودگاه منتظر ماست بای دسه من تعارف بلد نیستم. ولی اونقدر سرم میشه که وقتی دست و شما تنگه شد یه مقدار پولم بتونه یک گوشه رو بگیره بعد اونقدر از شما به ما رسیده که یک دماغ ما میتونیم اونجا کنیم اگه نداشتم نمی منم چه جام کارگار رو اجاره دادم بعد شما یه پول پیشی گرفتن یعنی واقعا دیگه اینجا نمیخواین کار کنیم؟ یک کردم اینجوری بهتره منم از شما مخواهم برم میکم کلم باز موازه باشید سراتونو بادنید سر ما نکارا برو بیرم برو شما ما این مسافر نسید باشید دنبال کار تو منم قرار دارم ستایی از در کارگاه خارج میشن و شوخی کنن به سر کوچه میرسن یه هایی یه ماشین با سرعت میپیشه جلوشون دوتا خانم سرمشین شن شما رو چه به این ماشین؟ خانم شما رو نرشیم شما توتا ماشین میره من رو میره. منو یه پس کردنی به شاهکار میزنیم همین حسینم بیه تاکسی صدا میزنیم آقا اول منو رو بذار چارهای سنبول بعد اینا رو بهیسونو شاهکار باز هم داره پول میشماره مگه الان ماشین نشمون چرا ولی کیفش مقدر ماشین ببره اومن. شاکه آجان فردات شد کل نظر رو کلان تو ده تومن زیر قیمت دلار تقل و بده افصال میدیم چی اگه اعتماد نداری بیاییم کولت خب چون بخوای چنش کنید ایش آقا به بر میخوره همیشه گفتن اعتیاد شد در راست میگه دیگه اگه به دلار قلابی بندستن تو من بکت قریب چه خاکی بریز میتونیست دارت میگم طرف همشهریمه شما میدونی آبادانی یا چقدر تحصیب دارون رو همسریه بابا دیدی یا جب همه دولار رو مچانی دادا؟ شاکار لاف نه من لاف میام اگه خدا بشه من آقا این رفیقه من میتو فردوسی پیاده میشه من فردوسی من چهار استنبول پیاده میشه بقیه شو پیاده برو یه هفت میسه شاپا جان یه رو کلا نذاره من دیگه سپارش نمیخونم لادن عرفشاهی مشغول بازید از کارگاه و اموناسرم میاد جاله دستیار خانم عرفشاهی با کاغذ و قلم پشت سر عرفشاهی راه میاخت کاغذی که داریم مهندس شیر نسکافه درست کردم ساعت میشه خیلی ممنون بینجوی بیم بزرگ کوچی که داریم دستگاه فرز بزرگم که اونجاست مینی فرز بنویس خب ببینیم اینجا چی کم داریم جاله ظاهرا کمی گیچ میزنه سوهان نرمازه آچارنگی مراکب هفته کونزده امروغافی شکسته بنویس بگیرن یه دست متعاها نم بنویس پیستول اضافی شلن یه دروی خانجی تبدیل سه بی کپان دستگاه متوجوشه کنم ظاهر و باطن نا نمخمش خانم مهندس آش باجاش بلویس آش باجاش جوش بفهم سرد میشه آش نخ <تصفيق> نستافه آش <تصفيق> عرب شو این میره داخل دفترو امو ناصرم همین جور که داره جاله رو چپ چپ نگاه میکنه وارد دفتر میشه <تصفيق> شاکار توی <متغنی> خیابون قدم میزنه و از کنار مغازه عتیقه و عرض و سکه فروشی رد میشه شاکار وارد یه مغازه میشه و از مغازه دار آدرس میپرسه شاکار میخواد از شهار را رد بشه که یه موتوری با ترک نشین جلوی پاش ترمز میگیره برشت موتاری میره و شاهکار کیف تو دستش رو چک میکنه و براهش ادامه میده شاهکار همچنان داخل پیاده رو دنبال آدرس میکرده که همون موتوری بهش نزدیک میشه و ترک نشین کیف شاهکار رو از رو دوشش بر میده و فرار میکنه دوی دنبال موتوری و تکنشین موتوری یه زنجیر رو دو هبا میچه بر خونه کنار میزنه منوشه رو امیر حسین تو خونه مشغول جمع کردن ساکه ها شده دیگه دیگه نکرده لابد رفته و فلافل برزه کنشی کمه کارت خوردهش دوتایی میان سمت تلخون بفهمید بله سلام همونسه همونسه سلامتی بله دیگه این جمع جل میکن ما نمیشیم دیگه. چش کلیدو باره همین الان میبرم. چش خداحافظ. چی گه؟ کو شب اخرشان میایین اونجا. کو باز جلوی کباب افتادین. برم این کلیدو بدم به بیداوادیو بیام. واسه چی؟ ام‌نصر میخواد خونه رو بفروشه. ای بی زودی شاید به پولش احتیاج داره دیگه. منو در درو باز میکنه؟ شاهکار پشت در. تو چه اینجا وایسادی؟ دو ساعت داریم حرفتو می‌زنیم پیدا نمشه آقای علارضاده. بیا تو. هیچ معلوم از کجایی؟ هر روز دست ساپو چمدون کردی، الانم که باید, باید میری خونه عمو. <laughs> قیافش معلومه که همشریش تو زرد ازافت درمنده. اون قیافه بیشتر نشون میده طرف اصلا سر قرار نمیاد. حالا همشری رو بیخیال، میریم از بانک پول میگیریم منات که اصن سرمون نیست. و و و ببینم، چیفت کو؟ پولا کو؟ ای بابا آقا شما بدنم چز نمی‌دونی که اصلا حرف زدی دد دد دد دد دد نمی‌خوام ببینم کجا پولا پولا پاسپورتم پیش اینه شاکار یه نقاشی نشون میده که تصویر آقا دولت است ای. اون کیه الان است آقا منوچ یه حیوان یه جانی یه دوز کیف قاب بود میخوای بگی کیفا زدن می‌خوام بگم من گفت، گفتم دیگه شاکار از این شوخی با من نکنه می‌دونی من اعصابم اعصاب ندارم یه دفعه قاطی می‌کنم ها پیش بیشم بینیم بابا میگن تو مهدون فرداسی بودم شروع مدر پرسد رفت خاک تو اون سر شالت کنه نه جان من اپوش زده و نه بوده بسخری که هدی و پول آما میخوام امیر حسین لیبان چایشو پرت میکنه سمت شاکار لیبانه شاکار جا خالی میده امیر حسین میفت دنبالش شاهکارم فرار میکنه می‌تونم بگم. اونارو می‌پارهن سمت حق. <تصفيق> برای همدیگه خط و نشون می‌کشن. آمانه بده. بده. بده. انی پسر بالاخره شاهکارو میگیره اون شاهکار به التماس میفته. همین الو؟ انی حسین، انی حسین، دست کن. وقتی کردم. وقتی کردی. وقتی کردی. آقا بیداوادی پشت دره. زرزله اومده؟ کجا اومده؟ از من میپرسی؟ خونه شما؟ نه مرد حسابی چار ستونو ساختم داری میده از اومد نه؟ این همون داده که بدم خدمت شما چی؟ این کلید آپارتمان گذاشته بر فروش کفی اکش را بدن بشم بله شما بدم بیدابادی کلیدو میقاب و از پله‌ها ها بالا میره روی تراس حیاط شاهکار گوشت به سیخ میزنه. امیر حسه سالات درست میکنه منوشه هم نگران قدم میزنه. آقا خسارتتون رو میدم دیگه میدم دعوا نداریم که آقاه اصلا میدون چیه؟ دارو ندارم اون من. خودمون دارو نداره تو. سه تا پیندره دو تا شلوار که یکی خشتکش پا است. خیلی نامردی ازا همین عینک چند میخرن. بدبخت اونم که ما وسط خریدین. شما لط کنید در موزه. امو امو جون من داری 1 و 400 تا تومان بهن اینا رو ببندم میبینی که خودم لنگ پولم غنایی دارم واسو آقا اصلا میدونی چیه شما برید دوه تو فرودگاه مجید منتظرتونه منم چشمم خورد نه اینجا جون میکنه پول تو براتون میفرستم شاکر خان یا همه با هم میمونیم ما تو جون میکنیم یا همه با هم میریم با تو جون میکنیم بعد بخ یاد بگی این دما ما اصلا نفهمید من چی گفتم دای برس همین هم آباده امو سیخهای کباب از رو منقل برده شاکار اون گوجه رو برده بیا اما شما جوم بخواه گوجه چیه نوکره و همه دور میز شام که روی تراس حیاته نشستن آبو جام جام بسونم بگم با این دستگولی که آقا شاکار رو عبدادت فکر حالا حالا خونه مندلاری ما؟ و حال من سر قولی که به بابا هاتون دادم بایستدم اون مسئله من ای وقتی که نرفتی میشین همون جا ببونی خیلی من یعنی تا وقتی که پاسپورت شاکار آماده بشه دیگه بله فقط اگه میشد تا موقع خرج سفر همونم جون کردیم خیلی خوب میشد آخ گفتی حالا چه رسطایتون زدیم به من نمو کاری چیزی با سمون سراب نداری پیش این آره. به زندگاه شما هستن. هستم دیگه خندیدی هم <تصفح> و اما کارگاه قدیم اموناصر و حال حاضر خانم عرفشاهی که کارگرها مشغول کار بابا عبدالله این چه دو سنگ زدنه کن همه قانوم به قانوم باشه یا شمد که سن بگیرم کارگوش ها کنگه میشه اشکال از سنگ نیست ماشین پاترول اموناصر جلوی کارگاه میسته بچه ها هم سبار ماشین <مشار> امون آسر با کتو شلوار و گل و شیرینی از ماشین پیاده میشه امون اما امون ماهی دیویست کمتن نمیسته با للاهن دیگه پیش این بابا ماهی دیویستو هنچه ودات شه به دولارش که تبدیل بکنی میشه همش پول چهار شبوته کاشت زینو به چسبین سواری پیش کشه امون وارد کارگاه میشه خانم عرف شاهی یه ماسک سفید جلوی دهنش بسته و بالای سر یکی از کارگرها حسن نباشیم خانم مهندس سلا قصایی شدیم بزنم که تخته جور شروع کردیم باییونو نگرانم ما سن شما حرفش هم نزنیم قابل نیست باورد باید نگیم که جماعتم باید که کفر کنیم باید هم بحکم باید نگیم اگه واقعا هم نگرانی نگیم چرا؟ یه واقعیت اگه اگر هستونم به موقع تحلیل بدم باید روزی یه میلیون فسارت بدم روزی یه میلیون؟ بله یه میلیون. را منم دارم کمتر نگران میشم آخه ترس حسریه شجاعت چطور؟ تا نمیشونید آخه نمیخوا موزارم کارتون بشن خواهش میکنم بفرمیم عرب شایی گلها رو داخل گلدون دفتر میزره شما با منوزون بانتتون رو داریم که تو باز مخواستم کنم اندرسه اگه موافقت اگه بگم از همین حالا در خیارتون خوبه آوالیه مطمئن بودم رو مورده میکنیم براتون چایی برجم خانم عرب شهی میده چایی بریزه و عمو هم فکر میکنه تا چجوری سر صحبت رو باز کنه میتونم ازتون یه خرایشی بکنم امیزوانم بکنم ازتون خرایشی بکنم بکنم ازتون خرایشی بکنم همونایی که عاملان سازمان صدا و سیما هستن، دیپلمه اون علی جاله، دستیار عربشاهی خدمت... از ماشین پیاده میشه و صندوق ماشین رو بالا میذاره. امیرحسین شاهکارم از ماشین امو جاله رو میپاد. ا جلال دنیا عوض شد. خیال می‌کنی ما با چی بیکاریم؟ نمیریم دانشگاه. لا لیاقتش نداریم دیگه. نه بیچاره، اون‌ها ما جای ما رو گرفتن. ا اوگه. شاهکار دکمه های پیراهنشو میبنده و با نقشه به جاله که مشغول بیرون نوردن بسته های از صندوق ماشینه نزدیک میشه شما چرا زحمتیم کشین؟ زحمتی نی؟ خیلی من به حال قابل و من تو هممالی فوق تخصص دارم آه. راست میگیم؟ باور کنیم تشکر الان میگم کارگرها بیان و من چی کارم؟ تو دو, دو تا همکار دارم آخ ببخشید اونا فوق تخصص دارن ای ولی من کار کشه ترم منو به سمتشون میدار خانمون زحمت کشیدن دارم به من کمک میکنن برای سوا بشنم هره دیگه زن زلیده بدبخت اما از در کارگاه بیرون میاد بچه بچه ها خب منو شوخیات کنم چرا صدا کنم دیگه او معنصر عرفشاهی حق زدم حله فقط میخواد یه امتحانی ازتون بگیره چه امتحانی همین چوشکادیو نپاشی دیگه بفهم اما واقعا میخواد این امتحان بگیره اما اشکالی داره خب ما که هیچی چی بلد نیستیم من یه کاریش میکنم جالب بسته ها رو به زحمت داخل کارگاه میاره و خانم عرفشاهی میره به کمکش و یه بسته رو ازش میگیره بزاید. بزرش میشه با سه تا نیروی مثلا زبدش وارد کارگاه میشه حال بچه اومده بفرماین اما جان شما نگاه که این مهندس عرب شایی زنه زنه؟ چه فرق نمکنه. اون میخواد از ما امتحان بگیره؟ ایرادی داره؟ خب اون قراره به شما حفول بده؟ ببخش در اونجا من یکی نیست منو چه بی خیال میشه از کارگاه بیرون میره مسخره اول التماس میکنی که کار میخوای آدم خواهش تمنن میکنه خودش رو کوچیک میکنه بعد میذارن زیرش تو چی چی فهم میزن جامعه امکانی نمیدی چرا چی کار دارم من به کودک و نوجوان امتحان میدم رزیش با این بدهکاری که من بالا آوردمو واسه مرده شوری ام امتحان میدم تو چی امتحان میدم داخل دفتر خانم عربشاهی ستا بودون سفا میتون کن اون یک کار فوریفی شما رفت بر میگرده برای امتحان حاضری؟ بله خانم بفرماییم بریم تو سالن محلا منو شفت تنها بیرون کارگاه به ماشین تکیه داده و منتظره یک کاغذ از جیبش بیرون میاره و چیزی رو روش می نبیسه. و نوشتر رو زیر برف با کن ماشین میذار و میره عربشایی به سمت شاهکار که مشغول جوشکاریه میره با ماسک جوشکاری یه نگاه به کارش میدازه خیلی کنید اجله کن مخ ها دردید برش میخواد بره که شاهکار زیر لب میگه بار بابا دوله. و حالا عرب شاهی میره سراغ امیر حسین که مشغول رنگ‌آمیزی با اسپری راه. به نظر خانمتوره. به طرزی نمیتونم بزنم خانم مهندس. فایل سا قبول. امیر حسین با تایید عرب شاهی ذوق میکنه و خوشحال میشه. خانم مهندس تلفن. برو به پسره بگو وقتش تموم بله جالب میره سمت شاه آقا آقا دیگه نرزن بس کمون فقط یه خواهد جوش مونده خواهد مهندس بود بس کمون باشه باشه به شما قبولم جالبه میزه هسته دیگه سیره میز که خوب جوش داده شده اشاره می کن طبط خودم هم میدونه آوازش کنه. جان. برید ازم برای نیالا وزش. اومم من طرف بازی جواب مردنم سر پلی. آوازش رو بالا قبول نمی‌کنه. بودی که که جوش داده رو از روی میز کار بلند و دستش می‌سوزه. اتفاقاً به خاطرش تو, تو, تو, تو مرامم اون نیست. منوچه به باشگاه بولینگ رو خود بولینگ رو بر میداره و مشغول بازی میشه امیر حسین و عمو شاهکارم به باشگاه میاد اینجوری دیگه تنها تنها اوگه من که نامه فضایت شده من رو دمشته بودم اده بابا بیا, بیا. ببین این بدلک و تکمات قبول شد ولی یه خالجوش دادم کار دست اسباهان یه تو فکر میگه آخوادش خودش قلب کرد و سیده ها بیا همه مشغول بازی میشه خب این مسخره بازی چی بود؟ این که آدم اصول خودشو داره این است. ببینم این بچه که امتحان دادن و استخدام شدن اصولشون رو زیر پا گذاشتن اما هر کسی عادی خودش شده با واسه امتحان دادن مشکل داشتی داشی؟ خوشو خوردن با هم دیگه رفتن کارگاه. ده ده ده. نه. پس مشکل تو امتحان دادن به یک خانومه. تو اجاره دادن به کارگاه. حقوق رانندش با منه. هست یا نه؟ دستورش چی؟ بابا بی شدی که منوش، منوش، دیگه به خاطر اتفاقاتم الان ببین. خواهش میکنم تو یکی دیگه تو این جمع حرف ای بابا در حال نظرش بود دیگه. ولی ای که چون 1.400 داده بودی من فکر کردم که گهنش بوده. سه تایی سواره وانتی دو کابین هستن و, و شاهکار عکس آقا دزدرو سعی میکنه دیگه شیشه عقب ماشین صاف کنه. ببینم میتونی پارژ کنی. بابا که کاغذ افتاده رو صورتش. خلق الله اشتباه میکنن دنبال پیرمرد میگردن. نگران نباش بابا زیراکسش خوب میفته. آقا چه دخالت میکنی شما؟ من رفتم آقا اینو اگه نشونی خوب نمیدادم که نمیتونست این بکشه نشونی؟ <تصفح> زرما اوکی آقا منو چه؟ اون ماشه که این وقت صبح بعید میدونم بید آوادی در مغازش باشه. آقا خودش گفت صبح زود بیاییم واقعا با اون قرار گذاشتن شاکا اطفرم اموز دیدیم خانم عربشایی مشغولی چک کردن محصولات کارگاه این از آقایی شکشه حالا ستایی به مغازه لوازم و تحریری آقای بیدابادی اومدن آقای بیدابادی یکم زودتا نمیشه بابا چقدر عجولی اگر کاری شیطونه سب کنه داره تمام میشه آها پنج و چهار پنجوش، آها تموم شد بیدابادی از اکس آقا دزده فوتو شب... میگیره به جون خودم من دیدنش. دیدمش راست میگی دروغم چیه حالت نکنه پاتوقش همین طرفه. خب بیده بودی یه جور اگه بگیریش همین مژدگانی به خودت میرسه دیگه. مژدگانی چی من حاضرام به شما سه نفر یه چیزی دستی بدم. از اون آپارتمون بریم به امان خدا. دست شما درد نکنه. خیلی خوب. اینم 50 تا. روی برگه نوشته این نامرد را پیدا کنید و 5 میلیون تومان مژدگانی بگیرید. باز تو که شاهکار زدی. دیگه چی شده؟ این مژدگانی چی اینجوری نوشتی؟ تمام مژدگانیه که کسی قدم از قدم برنم داره. همین صدام اگه جایزه نقدی وسش نمیذاشتن و صد سال سیار رو صد بیرون آخه دیوونه نفری 700 از از همون دزدیدن و تو میخوای این همه مژگونی بدی خب پاسپورت هم بوده دیگه پ این شور خودتو ببره با اون پاسپورت که رو هم دوزارم حرف گهنه تو بفهم شاراب آخره گاگولی اگه دزدو گرفتن پول پاسپورت رو بهمون پس دادن تو چطوری میخواد 5نج میلیون تومن مژگونی بدی 5 میلیون؟ چه خبره؟ پنجه هزار تومن دیگه؟ پس بیسابو چرا اینجا نوشتی پنج میلین تومن؟ ایشون آخر یازی رو تک ماده نمی کردن داده پس پنجه هزار چند تا نقطه داره؟ وا. جان جانو و زرمار بگیر صفراشو درست کن بگیر آقای بیدوادی یه ماشیک بزن من یه صفرین رو بزنم بله دو تا شو باید پاپ کنی پس دو تا ماشیک باید بده بیدوادی ستای سوار وانیت میرسان جلوی در کارگاه و به سرعت از ماشین پیاده میشن شاهکار آروم در کارگاه و باز میکنه و اصلای در کارگاه میپاد که خانم عربشاهی و جاله تو دفترشونن. هست شاهکار و امیر حسین و دولا دولا وارد کارگاه میشنن یهواشکی سعی میکنن از زیر میسا به محل کارشون برن امیر حسین این پاش میخوره به وسیله ها و همه کارگرها نگاش میکنن خانم عربشا هم متوجه میشه ولی به روی خودش نمیارهخره سلام سلام یه جلو ببینم بهتون بخی خانه مهندس صبح بخی یا زور بخیر صبح معمولا صبح خب صبح بخیر میگیم شبا شب بخی اخی زور و برازه بیشتر مال خارجی هست باز که دیگه نگو الان ساعت چنده به جون من ساعت ندارم تو چی منم ندارم همین دیگه ساعت ازتون نیست از زمان قافله حالا برای اینکه یادتون بمونه ساعت کار کارگاه هفت صبح نیازده و نیمه دو بنویس سه روز از حقوق هر دوشون کمیش سه روز کمه باید نه با خوب خوبه اصطاب کرده من بودم اینویشم 5 روز بنویس پنگ روز پنگ روز زیاده نه آیش آخه یه جور بشه شما هم زره نکنه دیگه بسته دیگه اینگه مزه نریز خوده چشم بری س شهر. شهر. یه بار دیگه تخریقه ما و جهده شده باشید هر دوتون اخراجید اون یکیتون کب اوناش منو چه وارد کارگاه میشه و عرب شاهی رو نگاه میکنه با شما یاد ندادن وقتی وارد جایی میشینه و سلام کنیم فکر نمی‌کنم کنم وارد جایی شده باشن از این ببطر فکر کنیم فهمیدم مشکل شما چیه سلام. علیک سلام. من احترام که در نمی کنه. از چی گزاییم؟ ببینید آقای عزیز، رعایت مقررات جز اصول کارمه. کدوم مقررات. اینکه شما در اختیار کارگاه هستین، اینکه افراد باید رس ساعت به کارگاه برسونید. اینکه خریدای کارگاه به شماست. اگر بنا به دلایلی نمیتونید مسئولیت بگردن بدید، اعلام کنید. من به ناصره میگم یه راننده به پس قبول میکنی به میگم لیست خریدای امروز رو براتون بیاره عربشاهی به سمت دفترش میروه و منوشه هم شاکار نگاه میکنه منوشهرم آره خوب اومدی اوگه ساعت شیش صبحه منوشهر رو تختش خوابیده که ساعتش زنگ میزنه زن که ساعت رو قطع میکنه و به خوابش ادامه میده ولی یه هو از جاش بلند میشه و فوری میخواد آمادهی رفتن بشه بچه ها صاف شده باشید بچه ها بچه امیر حسین و شاهکار هم که جوراباش رو نصفه بپا کرده تو اتاقشون خوابیدن. با وانت منوچهر به کارگاه میرسن و از ماشین پیاده میشن تا برای کار کردن آماده بشن جانو خانم عربشاهی هم ایستادن و نزارگر ورود کارگرها امیر حسین شاهکار هل میده تا وارد اتاقی کارگاه بشن که سرش به بالای ورودی میخوره خب ظاهرا خانم عربشاهی از این نظم و وقت راضیه. رازیه منوچهر هم از دور زل زده به خانم عربشاهی ساعت 10 دقیقه به هفت صبحه و باز هم همه کارگرها به موقع وارد کارگاه میشن و منوچهر هم با اختدار برای عرب شاهی قد علم میکنه. عرب شاهی هم به ساعتش نگاه میکنه. یه روز دیگه. ساعت 20 دقیقه به هفت صبحه و باز هم منوچهر به موقع زودتر از همیشه وارد کارگاه میشه و با نگاه کردن به ساعتش وقت شناسیش رو به رخ عرب شاهی میکشه. آقایون مجرد و امیر که سازدهنی میزنه منو شهر چهر و تو حیات پینگ پوینگ بازی میکنن اره دور آمدی چه ناس دور آمدی خست نباشی آمانده نباشی خاص نباشی آمانده نباشی و بابا مگه من افغانی میزنم که تا افغانی میخونی چیه؟ با این چیزی که تو میزنی فقط افغانی میشه دیگه اصلا اون جمعه نداری تحتیل شاهکار یه موضو پوست میکنه و با یه گاز همهشو میخوره منوش بابا تو داغ شدی ما صبح بریم سر کارا جواب او رو من بدبخ بدمو یه ذره دیگه بلان به خودت برس الان میری. من, من چقدر خودم برسم چقدر بخور هی میگی بخور بخور تو هماره دیگه در اصلا نه میگه صبح شده و بچه ها آمودهی رفتن به کار هستن و به سمت وانت میاد. ولی دوز دو تا چرخهای عقب وانت رو دوز دیده باید باید به خوش بابا خیلی با معرفت بودا. دو تاشو نبرده. ولی خوش سابقه بوده. آخا خاله جواب اونشی چی داد رسوندن اون هرکس خودش جواب میده. آقا یه پیشنهاد. ها. اوکی یه زمینین ببینم میگم چطور ماشین آبادی رو قرض کنم. نه. نمیچونه. نه, نه. هر پنش ما که فکر نمیکنه یه چیز خوب میگی ولی آ. شرب. عادتی. ان شاءالله میگه؟ یعنی دوستم، عزیزم، رویقم، برده شد ای جون خود، گفتم یه چیزی هست؟ <تصفح> ساعت هفته صبح و باز هم منوچه به موقع میگذر این بیسه رسالیه که امروز برده خواهیم بقید ساعتی یک بعد میگذرش یه دقیقا رو برده برشا جلسان خیلی مانه این ناس میشه بگیره ماشنام خراب بود چه مرگشه منوشه همه ی رو با بیهوسلکی و ناراحتی از عربشاهی میگیر و میره عربشاهی هم یه لبخندی میزنه منوشه تو خیابون مشغول جوانداختن انداختن جدید وانته که بیدابادی میاد سمتش تموم نشد چرا تموم شد ببخشیده این رو کار زندگی انداختی به تو. بابا من که آقای خودم اون نوکر خودم. آقا من چه؟ جانم الانم دفتر من خود زنگ کردم. بله بفرمایید. شما هم بهتره برام یه ذره مقاصه. واسه چی؟ مشهبونی بده، قضیه جنب واسه چی؟ دوزا پیدا شده؟ نه، دوزه پیدا نشده. یکی اونو دیده. چی؟ این داوود چله. داوود چله کیه؟ داوود چله من خرابکاریه، کرده. همون دوره برام دست فکر و فیتیتوله رو دیگهو شناخته یعنی اون میتونه به ما نشونش بده آره خاطر همین اینا مدل در من دیگه خب پس به جون به جون آقای بیدابادی من الان پشت سایه جا تو به جون بابا چاکلم منو چه ماشین رو میده بده چه یواجی بوده اینجو دوول ماده دوول چاله منو چه هم با نت میسه چی شد صوفا اول وقت اومده بوده اینجا دوزه نه بابا چله خب میگن دزرم دیده کجا نمیدونم الان کجاست دوزه নবাব چله فاطقش میگن دم پاساژ নবাব رو سیدی غیر مجازم میپوشی کدوم پاساج؟ همین سر چهاراکی بدیم خداحافظی صاحب ک منم باید بیام بابا تو که اونو نمیشناسیش که لازم من باید بیام نشونه زدم مانوچه فوری سوار ماشین میشه و راه من چه به جرایی یه پاساش میرسه که یه دست فروشم جلوش نشستم آدابوتایی؟ نه میشناسیش؟ دنبارده و شلهی؟ میدونی خوش هست؟ دوار میخواد؟ کارش دانم وقتی خواهیم منوشه از های پایین میره و داخل مغازه ها را برای پیدا کردن داوود شله میگرده یه مرد لنگ لنگون از کنار مغازه ها رد میشه و منوشه اونو میبینه آه آه، شما ها دابود نیستیم خودم. خودم هم به من میگن داوود بول بول چقدر هم اسمتون بهتون میاد من دو داوود دابود چله میگردن اونم خودم اسم مرسار همه تو شما دورتون فونتر نمیشه تو تو هرن بشن خانه. من و آقای بیدوادی فرسته با با آقا مهندس اسم من منوچهر مهندس هم نیست فرقی آها من همه واسم مهندس هم چندن این پسر دوزدر رو دیدیش دو درست به حضرتو نیستم یه رقی بیا صبح دیدم کجا؟ چی نشد؟ م... یه قول و قرارایی گذاشم همداری اول باید موجبه نمیده من که هنوز کسی ها نگاه مهار بنار اگه نشونه شدم بعد زدی زیرش چی؟ نمیزنم اومدی مزدی بچی قبول داری قسم نکنم که نشونش بدی پولو که گرفتی ما اندوز هیچ یه چیز گفتن ارم میگیرم اما آرمان مانو میگیره مگه با بچه تازه پیکاگولی دستی که اسم دیگه وسط پیدا کن. 20 ده ده شما تا می دونی ما ساعت یک روبه ظهره. عرب شاهی عصبانی تو کارگاه راه میره و جاله هم گنبالشه از فردار پاشده میزنی تو کارگاه هم میدی؟ م. چه برداری من نگاه راست میگه نیگه میگه خود با خود را کشه با ماشین خودم میره چه؟ عرب شاهی در ماشینشو باز میکنه و پشت فرمون میشینه بفرمون آقا من اینو فقط اومد داروها خونه. اول داروها رو بگیرم بعد اخراجش کنم یا اول اخراجش کنم؟ جاله، خیندوازی در نمیاره اخراجت میکنم. کس. خدافظ. خدافظ. روشن نمیشه. یه حالش بده ببینم. الان میرم بچه‌ها رو صدا میکنم. بذار اونا به کارشون برسن. سرپانی دستش بزنی روشن میشه جاله هم میره ماشینو حل بده ولی ماشین تکون نمیخوره. ساام دور میزنم دور نزن هول بده. خب دارم همین کار میکنن عربش خودش از ماشین پیاده میشه و دوتاایی ماشین و هو میده ماشین راه میافته و هر لحظه سرعتش بیشتر میشه. جاله از ماشین جا میمونه عرب شد هم دیگه کنترل ماشین رو نداره ماشین با سرعت به یه ماشین دیگه میخوان؟ <تصفيق> کارگرها ها همچنان مشغول کاره. هم. منو هم با وانت و خریت ها به جلوی کارگاه میرسه جاله تو کارگاه قدم میزنه که منو شهر وارد کارگاه میشه باید که باشم دولتان ایا چی مهندس قدقن کرده پااتو بزاری تو کارگاه باسه چی؟ مگه قرار نبود ساعت در اینجا باشی؟ یه نگاه به ساعتت بنداز خجارت بکش بعد برو بید. من که به تو نمت حاضر کتم برو بگو خانم مهندست بیار برو بروشم نیستن برو سویچو بذار برو حالا به جای سویچ این دعوه ها رو بگیر زار زالن تو تو هایی نکنم منو جم بی خیال دیگه. خانم بلاخره جانشین مهندسه دیگه شما نمیخواد دون شاید واسه کسی باز کنید بفرماید بدی سر کار تخصیصیتون کدوم کن؟ <تصفح> بارار خوالی کن دیگه هم ما هاست داشتیم <تصفح> شما بید میشو... سر کارتون خودم بلدن چکار کنم اوگه ایچو بده خورتم آها شما میخوایی سوی چه از من بگیریم آخه مگه من از خانمه مهندسه شما گرفتن که سویچ برد بدم به شما سازالک خانم با من بودم ماشین صاحب داره سویچم میدم به صاحبش شخص منی چند آخه, آخه چرا شاکی میشی؟ خب زعیفه است تو میری تو شیکنش؟ رو رو بره دیر کردی؟ تلفار هم هستی؟ بند خدا خواست با ماشینش بره بیرون زد که. گرد از شما همون طرفی شدی؟ بابا شما اصلا میدونید من بسید چی دیگه کردن به خاطر شما کون بسرما آقا صاحب ماشین با تلفونه میگه ماشین رو بذار هم خودتون تشریفتون رو ببری منوشیخ به سمت دفتر کارگاه میره تا تلفن رو جواب بده جاله هم مختدرانه جلوی در دفتری ازداده سلام آمون هست گفتم ماشین رو بذاری چون در اجاره خانمه مهندسه. گفتم سویش رو بیاری دارین که ماشین دست سرکسی نمیدونه. هموناصر مشغول دویدن ورزش کردنه. نه هر چیزی حسابی داره. که بگیره ماشین تحویل نمیگیرن. میگیرن. شما گفتین سوئیچو بگیرم همونجا. شما خواستم بفهمم. چرا دیر رفته بودی؟ آقا حالا مهندس بدجوری گرفته بود. حالا می‌خوام به ذهن بزنم بگم تو چی بوده. اصلا من دلم نمیخواد همچین آدمی کار کنم. چی کار کنم؟ چرا؟ آدم بری نیست. فقط یه خورده جدی میتونم رازش کنم دوباره برگردی رازش کنیم؟ کار با منت دوستان دوستان نمیارزه همون اگه قرار به منت کشی باشه من هم نستم قبوله؟ حالا برو ماشین رو بیار شب اونجا بمونه تا صبح اسکلت چه برات نمیسرم امون لاغت دیگه این یکی از من هم خوب. ببین واش هنوز صحبیر توئه اگه یه مو از سرش کم بشه خسارتش خواهد بدی فهمیدی شوخی کردم تو دفتر کارگاه او با تلفن صحبت میکنه. ای بابا گفتم آژانس بگیره بفرسته براتون بابا چه اجازه بدیم ببینم کجا جا نذاشته شب شامتون رو یادتون نره بله دختری سر و یادش رفته خودم براتون میارم من تو کاغا منتظر ماشینم بابا چون. باشه باشه چشم خدا دیگرد این شانه عرب شاهی شماره ای رو میگیره سلام عرض کردم آقا عرب شاهی هستم چی شد این ماشین ای بابا یک ساعت من منتظرم در دقیقه پیش گفتین یه راب دیگر میگین نیم ساعت دیگه نه خیلی آقا اصلا منصرف شدم منصرف شدم در بس میگیرم خیلی معنوم نیمه های شبه عرفشاهی از کارگاه بیرون میاد و تو خیابون با ترس راه میره تا ماشین گیرش بیاد یه پیکان بهش نزدیک میشه ولی سوارش نمیکنه. می‌زنم خیلی ساده تا خدمتت برسون. منو با یه تاکسی به کارگاه میرسه که وانتم جلوش پارک. دو تا جوون با ماشین مزاحم عرب شاهی منو سواره وانت شده و راه افتاد. عرب شاهی می‌دوه تا فرار کنه ولی دو تا جوون هم میفتن دنبالش. با ماشین جلوی عربشاهی رو میگیرن که یکی از اونا میرسه سمت عربشاهی منوشه با وانت سر میرسه و فوری از ماشین پیاده و به سمت اونا میره. منوشف با اون مرد درگیر میشه سردشیل دیگه ماشین هم پیاده میشه تا به کمک رفیقش بیاد. بارش هر دو تاشون میزنه و فرار میکنن. عرب یه گوشه ایستاده و به منوچر نگاه میکنه. آرابشایی که آن کماس کاری کی بیرون یادم مانمشه رامونیم شما این من این وقت شب اینجا آمیز نیست تو تی ساپر بانی ت. خیلی ممنونم اگه امشب شما نبودین؟ حرفشم نزن به هر حال کارتون واقعا قابل شه، ولی ولی چی؟ میخواستم با عرض معذرت بگم که کار امشبتون باعث نمیشه که خطای بعد از ظهرتتون رو ببخشن از نظر من شما اخراجی. امیدوارم بتونین این رو موضوع رو از هم تفکیف کنیم میتونین؟ حتماً میتونیم شب بخیر خانمه عرب شاییم شما هیچ دینی به من نداریم وجدانتون راحت باشی و اما امیر حسین و شاهکار که مشغول آشپزیه. حبيب نور العيني حبیبه حبيب. حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب انقدر حبيب نداره حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب با کدوم حبيب چه حبيب و حبيب حبيب حبيب حبيب ما کامپیوتر داریم؟ ایمیلی که چی سیره یه؟ باز شدن در میاد و دوتهایی میدونن سمت در حالی چرا تا کجا کچه داشتن؟ فکر میخونی ما دنفو پس میشیم؟ من فکر کردم توی یک کبیمارستان های خوشهابه و لنگر انداختی اخراج شد. شوخی میکنی؟ فقط به ختم دیر اومدن؟ نه بابا ما بالاخره نفهمیدیم توی تو این خانم مهندس و چی قال گذاشتی؟ بیدابازی یه سرنخ پیدا کرده بود رفت دادن دومان یارو دوسته جونه پاسپورت پیدا شد همه سرکاری بود پس به خاطر ما اخراج شدی یاد بگیر اند مرامه خیلی با مرامی اینجا موندن ما علافیه بیا منو تو بریم شاکانم بعد میاد خیلی بی مرامی مگه خودت رو بر نگفتی شما بریم بعد من میام آبا اون موقع من گفتم بعدش هم خواستم اینه معرفتتون چقده ای داره یا نه من... 2000 پول تاجیب اون نیست در اصل کجا بریم چیه جا زدی جا نزدم آقا جون تو الان دیتی تو عصبانیت تصمیم میگیری بذار من یه زنگ بزنم به عمو خودش میدونه چه جوری مشکل رو حل کنه بی خودی زحمت نکش من از زیر بار مننتون می چشمرو که نمیرم ولی جون خودت خیلی پایی من واسه خودت دارم میگه منوش عزیزم واس تو حرف زدی شما هنوز نفهمیدین با چه آدمی طرف یه بچه پول داره که یه جمعنفت نداره حالا این خودتون رو میخواییم بمونیم بمونیم نه دیگه من عمرن اگه پاهم بزرم تون کارگاه منو چرا از خونه بیرون میره کارگاهی خانم عرب شده بینین این الگوها کلاسیکه دیگه مثل فرمای قبلی نیست کاملا این سایت ما ثابت نگرده با سوزن سوزن پای بلندمون کجاست؟ بدم بیارم, بیارم خواهر مهنده نه حالا من این کار انجام میدن بعد هم خواهر بگم عوین شاهکارم مشغول کارم ببین الان سرش خلبته وقت خوبیه اه, پس برو باش حرف بذار ماسکی تو دهنت نیست تو ده نزن دیگه قرارش تو صحبت بکنی تو که میتونی من جمهرتشو نداره؟ خیلی نامردی آقا تو یه نمخواه یه قدم با سریفیقت منوشور داری تو چی؟ من شاکار راه میفته که بره ولی خلاف جهت جایی که عرب شاهی ایستاده. ای این طرف. آخه من چیکار دارم؟ دارم میرم من گروه فشار استفاده کنم. گروه فشار. شاهکار با چشم و ابرو به جاله اشاره میکنه. واقعاً که شاهکار خیلی پستی. آقا چرا بعد برداشت میکنیم این بهترین روش دیگه. شاکار میره سمت دفتر جاره سلام الکترود دوست نه بابا انقدر الکترود رو که نمیدونم بایش چی کار کنم پس چی ببین جاله خانم پشتکا شاکار با این حرف جاله قیافش در هم میره خب پشتکار خانم میتونی یه کاری واسمان بکنی؟ مرخصی نمیتونم بدم نه ساعتی نه روزانه نه حالا ولی که مرخصی خواست از پس چی میخوای میتونی یه پارتی بازی کنی رفیق اوموار کرده حرفش هم نزن خواهی مهندس اینقدر دست رو رفیق دست رو که اگه من لبتر کنم منم اخراج میکنه از میشن؟ میشن اخراج پس چرا داور امره دوور میشن امیشه زیرد زد اخراج مینام کارده قرمز میده آره دیگه ا دره نیاز اه، یه زبه الکترات رو دوام بده اوکیه الکترات ولی حالا میخوام زود بشه بده شاهکار با دیدن محنگه خودش رو جمع جول میکنه اومده بودم یه زبه الکترات بگیرم اگه هنوز جوشگاری د... ولی بعد نیست آدم داشته باشه او سر کارتی اوگی شاش یه نگاهی به جالمین می‌ندازه. سرام از این نبت شهرکار رو من تو دفتر زد کنش رو هم میدازی بره مطلش نکن آکه چش منوچه های آپارتمان پایین میاد تا به جایی که همون مشغول رکاب زدن با دوشرخی ثابته میرسه سنا همونجا من این سویش رو اینجا کای ندارین؟ سر خوام بدونم تو اون کندر چی میگذره؟ دوباله چی هستی؟ هیچی به من نگو هیچی اما ما راجع به مشکلاتمون قبلا با هم صحبت کردیم نکردیم محب تازهی ندارم حاشیه نرو تو پول و کار نیست اتفاقه همین است. تو دیپلومه هنرستانی کارت هم خیلی خیلی خوب بلدی. ولی احترام اجتماعی ندارم چون پول ندارم هیچ تزمینی واسه ی آیندم ندارم چون پول ندارم مدرک دانشگاهی و خانواده اصیلم که برگونش بر. دیگه نگو که عشقم درآوردی دارو همون دارم میرم دوبه اونقدر پول دارشم اون پول در بیارم که دیگه کسی جورت نکنه بپرسه مدرک داری یا نه خانواده اصیل داری یا نه تو جده فکر می اگه پول دار بشی مردم به فکر نمی مطمئن اشتباه میکنی اردان به کسی احترام میذارن که جوهر انسانیت داشته باشه کجا میتوشن این جوهره ها دنبالش نگرد تو ذات عمه هست تو هم داری؟ فقط قدرشو نمیدونی نسوییچو بردار تا کارای سفرتون درست نشده پیشت باشه دنبال کاراتون باش به بارش داد <تص> شهر قبول میکنه و امو هم به رکاب زدنش ادامه میده شاهکار رومیز کارش خوابش برده که جاله با دو تا پایی آباجور فلزی میاد بالای سرش اونا رو رو رومیز شاهکار از خواب میپره ایچه رنگه درست از کن خانم و کارگرها مشغول بستبندی محصولات کارگاه هم امیر حسین هم نیمه خواب با اسپری رنگ مشغول رنگامیزیه که عربشاهی سر میلسه امیر حسین و شاکار و منفشهر وارده اداره کل گزرنامه بیشه خانوم عربشاهی هم به دفتر شرکتی که سفارش محصولات داده اومده و با مدیرش بحث میکنه چطور بگم؟ فعلا نمیتونم طبق قرارداد عمل کنم کارگرای من پول میخوام برشون حس اصال کنم خانم من که مخالفی ندارم ما کدوم پول شما چه کسی دوم تونم من امضا نکردیم. یه پیمان کار باید این قدر پشته ای داشته باشه که بتون حقوق به چهار کاریگر پرداخت ب خانم شما که در جر گرفتار من هستیم من متاسفانه شما درجریان گرفتار یا مشکلات من نیست آقای فخار کارگرای من مسافرن به پول احتیاج دارن یه قون پولم تو حسصابون نیست برید باام بگیرید. باید قرض بکنید پول بعده دار بگیرید من چه می کنم؟ من کارای دیگه چیکار کار کنم؟ بابا من خیلی کارای دیگه میکنن من به عنوان یه زن نمیتونم الان این پول بعده ای بگیرم وگرنه من تاثیری شما نموندم که صدرا باعث هیئت مدیره شرکت گفتم با زن جماهت قرارداد نمدید. کاری که مردم میتونن بکنن با مردا بسپید. خوب شدگارتون انداختم با زن طرفی. خیلی ممنون. معذرم اینو. نظرتون رو فهمیدم. ببینید اول این من طبق قرارداد کارم آماده تحویله ولی تا شنبه صبر میکنم با پول نقد این کارتون رو تحویل میگیرید میرید نه وعده قبول میکنم نه چک ناده خانون عرب شاهی اگه به هر دلیلی نخواستین مایش یه تلفنه به شایدی که انقدر مرد باشی گوشی رو ورداری بگی نمیخوام منم انقدر وجودشو دارم که جنسامو تک تک ببرم کنار خیابون بفروشم عرب وارد بارده کارگاه میشه و از صداهایی که میشنوه تعجب میکنه شاهتار رفته بگه میزه کارش و یک کنسفتی برای خودش ترتیب داده بقیه هم از پایین براش دست میزنه اوکی بده کرد اینجا کجاست؟ دیگه شورره شده رو یه سالتون بکنن کارگار میزنین رو سرتو تو شما دیگه هم خراب کردین خانم مهندس کار که تموم شده بود ما منتظر نشسته بودیم تا شما تش بیارییم دیگه تصویر حساب بکنیم. از تصویر حساب خبری نیست. چرا بقیه حقوقمون رو جریمه شدیم؟ نه فقط تا روز شنبه نمیتونم حقوقتون رو بده. ولی ما قراردادمون تموم شده. تأخیر حقوقتون رو جبران می‌کنم. خوبه؟ خیلی ممنون ما که بهره نخواستیم. همون حقوقمون هم بده این کافیه دیگه. چند بار بگم تا روز شنبه از پول خبری نیست. یعنی زدید زیر قرارداد دیگه ها؟ شب و روز واسهتون کار کردیم هر ساعتی زدید دیم چقدر رفتیم جریمه کردی؟ راست رفتیم جریمه کردی. یه حالا که وقت پول لاده شده بامبول داره شده، با اون پول ببین پسر جون. ببین من پسر جون اگه یه جو معرفت داشتی یا یه جو تازمت باید حساب حقوق هم میدادی ما پول میخوایم همین امروز هم میخواییم تا پیش سینیوریتا به چه زبونی حالیت کنم تا قبل از روز شنبه نمیتونم با تصویر حساب کنم شنبه پول من نمیخوام من امروز پولت میکنم ما باش میدم پوستتو بکنه نا هی باسه من میکنه کتا نمی آ کتا کتا حالش نیست کتا حالا دیگه شاهکارم غاطی میکنه پولش رو بابا اگه باستا کار کردیم بقا بقا به دوباری نموده بابا دیگه دویی رو زنگیم رو عربشوهی ناراحته که انگار دیگه هیچ صدایی رو نمیشنقه من چونه امیر حسین و شاهکار به پی اچھا بیخیال شید عادی هم نکنید بخورید از سنجما بعد نخورده بدیم که خوردیم دیگه واضحی یکی بود آدم چپ و راست ناک اوتش یکی میزه چهار تا میکرد دلش نمیسوفت گادنامه نمیشه دستش گلن که. با دمه جان از اولش نمعت زیر بار میرفت راست میگه دیگه ریچ عمر می تو ماو نمیخواست دست دست کردین منو چون کار کجا بود من هم هم. بخوری. نه من تقریبا بازیدنم بخورین عذاب گیرید خودتون میده غلط میکنه نادر امم بکنیم باشی سر کارتون گذاشته. رو باره که شما مسافرین این در درباره که پولاتون اونقوی کنه. تمام نمیگه که نمیدم میگه شنبه میدم. راست میگه. خب میدونه ما تا شنبه نمیتونیم بمونیم میگه شنبه. آقا چطوره به عمو بگین پولمون ازش بگیره حواله کنه ازا. خدا به داد عمو برسید. سر اون فلان میذاره. راست چطوره به پشتار خانم بگیم اون لاغل حرف راست میگه دیگه شاکا جان سگ زرد دردر شغاله نه بو اون دکتر یک حیوانیه ندونم حیوانیه برزا تو بخور حال داری های اگه میشد یه جوری حال این سینوری تا رو من میگرفتن بکیری گذاشتو کازم <تصفح> به خدا به قرآن برسیم دعوی همه چی ها دونه بخوریم اوگه اینا هستم شاعر میگه امشوشوششه بقیلی لیلونه آبانجون کافیش چیمو تا لفتی اونجا آبانجون راستی کافیش چیمو به ایتالیایی میشه افتاد دوزاری افتاد خرابه این استلاحات اینترنشنال. شاهکار تا روی زمین خوابه که تلفن زنگ میخوره و به زحمت گوشی رو از روی میز بر میدن. بره شخ زور میزنی بنرید دیگه ششاهكار به سختی بلند میشه و میشینه روی امیر حسین هم روی مبر خوابیده سلام جل خانم شج یا همگارا قدیمی کردی <laughs> جدی شکر شرننی چه ساعتی نالی خوب باید بیاریم دیگه چیزی قدر شما بیاریم دیگه جلی جناده دیگه دوستم نداری دیگه دوستم ندرگی چیه بابا نسو بگیم قد شلو باش کردی پاشه پاشه خلق پشکار بود گفت دو بیایید دوسته حوقاتونو بگیرین چی میگی؟ بحچی پای باید که این از آقا شاکارت داری بیاید شاکار باید چیزه شاکار با پاچ میاد جلوی در اتاق منو که خوابید پاچون جل کنی جل کنی باید بریم داری بسردار پاسپورت آقا شاکارو بگیریم منوش پا میشی خیزه کنم آقا تاکسی می‌خوarem، بگی؟ می‌خوام بشال کنم. کناریست دیگه. بشین ببینیم بابا. بله. آب پاچه خالی کرد. ژانو عرفشاهی با یه تاکسی میاد جلوی کارگاه. عرب از ماشین پیاده میشه و وارد کارگاه میشه ولی از سحنهی که میبینه شکه میشه کل کارگاه به هم ریخته و تمام محصولات شکسته و خراب شده جاله هم وارد کارگاه میشه و با دیدن این سحنه بغز میکنه جاله میره در اقوش خانم عرب شد چه گنه نا دوباره شروع. امیر حسین شاهکار و منو شهر سواره وانیت بی نور عین من فکر نمیکنم ان جو جک پارک شما بریم پایین من یکم پایی تر من کرده دیگونه امیر حسین شاکار پیاده میشن و منو هم میده شاکار با چشمش به سبت دیگه خیابون اشاره شاف شاف شاف شاف. شاف شاف شاف شاف. وای بله آقا دوزده است چه دوزده هست که؟ دوزده دارم این شف شف علامت میدم از چی؟ خب مثل بچه آدم بگو نگاه کن شکت مثل بچه آدم بود خودت؟ آقا بدش کن تا سه میشمارم میریم دنبالش حاضری؟ تامرو نکن یک دو آقا دوزده با. هم ظاهرم فهمیده که اونا شناختنش شاهکار و امیرازه این با سرعت و تمام طوان میدوند سمت دزده آقا دوزده فوری میپره رو موتورشو فرار میکنه. شاهکارم یه موتور میگیره و میوپد دنبالش. امیرحسینم منو شهر رو صدا میزنه. آبره، و گریز شروع شده. شاهکار سر که موتور نشسته و بال بال می‌زنه. شاهکار دیگه طاقت نداره و خودش از پشت دسته گاز موتور رو میچرخونه آقا دیگه جایی <تصفيق> <تصفيق> <متنوع> موتور وان پیچ رو به سرعت رد میکنه شاهکار کلاکاسکت موتوری رو برداشت و میخواد اونو پرت کنه سمت آقا دزده بالاخره پرت میکنه او و کلاکاسکت میخوره به سر آقا دزده و اونم سرش گیج میره و توی یه شنو مااس های ساختمونییه کنار خیابون چپ میکنه میگه؟ آقا دوست به سختی بلند میشه ولی سه نفری میفتن به جونش باز هم سه نفری سوار پانه تن عرص خیلی توب بود و میگاه کنین منوش اون دقومیه نمیشه عوض نه بابا کسی اصلا از تو توقعی نداره زهره ما یعنی ما هنگاه تحتیلیم نگه بابا جدی دارم میگم نمیشه ما چه میداریم بابا بارو از داره گزرنامه بباز الش کن. عوضش الان حال میده پول بشماریم لذتشو ببریم اون چیست رو بده من اون من به تو که چیسته ندن nobody way man نی ناده الان میدم من مهندس میگیرم ست بار میشمارم تاگه منوش بیچو ما بیچو دیر برسیم تو آن هروی به آنها داریم دستم که جریمه دیر کات خورده بهتون حقوق نداریم <تصفح> شاکر تو واقعا پیگیری میکنی آن را آره میگیری آره اما سوپ جاله داییت کوپیان میگیریم جاله پشت کار خانم نیکه بله از وقتی با پشت کار خانم شدیم ماشاءالله خوب پشت کار زیاد شده کی ندارد کی میپای ببره بچری کارگاه میری. امیر حسین شاهکار وارد کارگاه میشه مکتونه نمیاد؟ خیلی از گافش خوشم میاد. بیا شادی انامی چیزی وسط گرفتم دیگه و سر بری جسته پیشگشش آبا بریم انا بیپره همینم جاله و عربشاهی مشغول جموجور کردن کارگاه هستن جاله کلی کلاهک آبا جور تو دستشه که میخوره به شاهکار شمایی با چه خبه شده؟ میبینین که خبه کدوم نامرده؟ نامرد زیاده که پیده کردان یکیش مشکله برای از برداره جاله عرب شاهی میره داخل دفتر هنده خوده حالش است نه؟ بری این دفتر خانم مهندس پولتون جور کرده از سفر خارج نمونید عرب از دفتر بیرون میره این هم دستوازتون حساب کتاباتون رو کشه به سلامت خیار میکنید با این اوزاده از تو دلوم میدیم پوله رو برداری؟ چرا؟ مگه پنشن به مسافر نیستین نگه نگفتیم پولت میکنم اینم پول سفر سلامت امیر حسین شاکار لباسهای کارگریشون رو به تن میکنن و میان پیش خانم مهندس. است خانم مهنم است از کجا عمر میکنی شروع کنیم ما؟ بینین که همه چه خرابه از هر جا سلاح میرم اوگه اوگه خیلی مخلصی مهندس بیا من و شهرم کارگاه میشه خانمه مهندس برمیگرده و با تعجب به من و شهر نگاه میکنه شاهکار اینجا بر من پیدا میشه شاهکار یه لباس کار آقا من خیلی نوکردی همه مشغول تعمیر وسایل هستن و جاله هم برای شاهکار چای میاره بفهم بفهم ای خانم شما چرا بایی حالتون شما هم که قوت خسته این چه کار کردانه؟ زود باش ده ده این موهبت رو کنیم آفه منو خانم مهندس کلاحک های آباشور رو ترمیم میکنن امیر حسین هم مشغول رنگامیزیه که شاهکار میاد پیشه اولا خوشم پولش کردیم داشتیم باید شما ما دوره علاف شدیم ما نیورا خانم مهندس دو تایی با هم میخوان منگنه کوپ رو بردارن که منوچهر زودتر برمی داره ولی اول وسیله تعمیری خانم مهندس رو منگنه میکوبه منوشه مشغول جوشکاری شکستگی پایه هاست جال همچایی میریزه شم شاهکار کنار وسایل دراز کشید و داره ساندویچ میخوره که از داخل ساندویچش یه میخ در میاد منوشه هم یه لغمه نون و پنیر و گوجه و ریحون آماده میکنه و برای خانم مهندس که مشغول رنگا میاره شوت رنگ از دستش میگیر و لغم رو بهش میده جال هم وسایل رو بسته بندی میکنه امیر حسین در حین رنگ زده خوابش میبره شاه کارم که خوابش برده و تو خواب هزیون میگه ژال هم سرش رو روی یکی از آباژورها جورها و میخواهه منوشهر یه آینه با هاشهی فلزی رو بلند میکنه که تصویر عربشاهی داخل آینه پیداست صبح شده خانم عربشاهی مشغول صحبت با تلفنه ناراحت تلفن رو قطع میکنه لباس کارشو در میار و با اجلا آمادهی رفتن میشه که منوشهر جلوشو میگیره کجا؟ یه کار دارم سو سو. خودم میری دو تایی سفر بالی تر هیچ فکر نمیکردم کردم به توی کار بر بیار. راستش راستشو من, من اصلا فکر نمی شما انقدر پوستتون کلاف باشه یعنی بتونین پا به پای ای مردا راحت باشیم ما دیگه عادت کردیم ولی میدونی چیه از نظر من زن بودن یا مرد بودن دیگه خیلی مهم نیست این شرایطی که آدم ها مثل خودش با رو میرم مستقیم بود شما یه بلندک نمید میرم خونه ولی اونجه هم از این طرف رفتتونه اونجه هم ولی اونجا خونه یک کار فهمان بود ای کاش نمید میدونین بعضی آدم ها واقعا ازشون رو ندارن آدم چیزی ازشون رفت آراش کاری نداشت خیلی شکل تلفن بود ولی نزد تلفن نزد من از قرار داده یه مناقص محبوب فقط به خاطر چند سطح هم که من خوالتون گذاشته بودم آشنا داشت میتونه از پادر میونه کنه ولی نکیم چرا دلیل خواستی داشت؟ بله به همون دلیلی که شما دوست نداشتین بیاین امتحام بدیم سر این کچه نگه می داره. عرب شاهی قبل از پیاده شدن از داخل کیفش یه اینک تودی رو بیرون میاره فکر کنم این, این اینک فال شما باشه. دیروز تو کارگافت یه پیدا پیداش کرد منوشه شکه میشه و میفهمه که عرب شاهی قضیه رو فهمیده خانوچه‌از ماشین پیاده میشه و به سمت خونه عربشاهی میاد که خانم عربشاهی با عجله و استرس از خونه میاد بیرون. حالش پدیده میشه برای بیمارستان. دو وارد خونه میشن. میشه به 300 داخل بیمارستان دکترها بالای سر پدر عربشاهی جمع شده اند. برای آخرین بار یه شوک 360 تو برگشت عربشاهی نگران بیرون تاقیز داده منوشه از لایه در نگاه میکنه خانم عربشاهی خداوشه برگشت راستگی به خدا عربشاهی غشت می‌کنه. یکی به من من برسه پرستار داره فشار عربشاهی رو که روی تخت راست کشیده میگیره خانمتون حامله تشارشون خیلی پایین بود خب شاید ماله یه چیزهای دیگه باشه خانم دکتر جی شبم تو کلی کار کردن میتونم ماله فستگی باشه نه؟ ممکنه یه سرو سر به دکست رو یه به کمپلکست هم داخلی سرو لطفا رو تن تشپتن پرستار میرن و منوشه بالای تخت عرفشاهی میسته و نگاهش میکنه یکی از پراسسان ها با سروم بر میگردند میشه شما چند به تشر باشیم دکترها پدر عربشاهی رو از روی برانکارد از اتاق بیرون میارد عرش رو ویدیو بعدش کجا می‌رید شما حالشون بهتر شده می‌برم سی سیو سی سیو مریم واسه تیم کجا سرگه بالا آهان تو راهی بالا برید شب شده عرف شاهی زیر سرمه آروم چشمشو باز می‌کنه منو چهرم کنار تختش روی صندلی خوابش خورده سوار وانی تنو منوشر وانی تو نگاه همه چی ممنونم. کاری نکردن. می‌خاین کمکتون نه حالام عرب شو یادم نشستهام پیاده میشه و قورسا یعرب شاهی رو برش می خانم عرب شاهی اونها جا گذاشته می گیره. خیلی ممنون. خواهشمه. بفرمایید. خواهش میکنم. شک. خواهش مقره. رفتن دو تای چند بار به میگردن و به هم نگاه میکنن بالاخره منوشر سوار پانت میشه شاکرو جاله تو کافی شاپ نشسته. بابا خسارت نشه. پول رفتی یا اگر بار گران بودیم و رفتیم به رفت. اگر نا بودیم و رفتیم خدایش مهربون بودیم دیگه. دین شاکر راست میگه. همینا با دروغم چی؟ همین الانش دارم از دور مهربونی میترکم. واه. با. بابا تو تا سانشاین که جای رو نمیگیره. بخور سخت نشه. اگه بری دوبهی با کی سانشاین میخوری؟ <تصفيق> بخشید من کفتنم بشه اگه با کسی برم سانشاین بخورم بخور سارت نشه پس چرا داری میری؟ فقط بوس رفاقت رفقاتون چرا دارم میرن؟ خریت. هم هممالا بهشون میگم کجا میخوایم بریم من امریکت به این بحالی آقا کار نیست که هست خدایی سانشاین نیست که هست آزادی آزادی نیست که هست مثلا من رو شما نشستیم جا داریم با هم حرف میزنیم بیشتر عاشنا بشیم کسی مزاهم ما شدتا حالا ممتفا شما ناتستم را رایت بخمیت من رایت زمین رایت زمین است آقای را در را اینجا کجاست بسیم میگیم دخترم و پسرم بو بخوانی سرد نشه سرت سرد نمیشه خب میگفتون این چه دیگه؟ بریشون بله میگم من خرش شیطان بیاید پایی؟ نریم آقا اگه بریم دوباره پر میکنن روزنامه ها فرار مخصه فرار مخصه من بریم کشششش ندارم که آقا به خلجشون نمیره شما یه جوری بگین به خرجشون داره دیگر حاکه شما بگه نمیگین اگه دو به یک بشین اون وقت نمونین چرا؟ خب سکت نمی کنین منوز فناندلشی شما بمونه. خداییش یه جورایی احساس کردم و چون قبلن با یه منسل نمیشه نمیشد خودش اما الان با یه تون اصلم نمیتونی بینیدارم بریش خداییش خانمه من دسم یه جورایی شده باید چه جورا چه جوری بگم مثلا مثل منوچ خان مثل من مثل شما شما الان چه جوری هسته آه خب اگه منوچهر خان بمونه وقت چی میشه دوه بیدوه نه میمونه که باسه این که من چون شما اومد نداره که بگیر چون از کسی خوشم میاد نسان دوبه ای نمیرم اونش با یعنی چی؟ تقلی صدا بلدی خب طب... وقتی بچه بودیم اموز هنجیرو بازگردیم آره صدای گوسم بزواله گاف خف چید ناسخان چی؟ جان؟ بلدی درالی خب باسه چی؟ این رقش دارم امیر حسین تنهایی تو خونه داره ساکش رو جمع میکنه ایمون توه؟ من همچنین تابلو تابلوی می میپرشم تابلو منو کیه؟ به شخصیت من که نمیخوره یا تو یا منوش دیگه چه دست دست میکنی دیگه یان دیگه گراب گیر دادی یادم جمع میکنم دیگه عبیل حسین میره سمت اتاق من میشه شما چه مرگتون شده؟ چه چمدون نمیبندی؟ عجل نکن دیگر نمیشه شید, شید. شید. شید. شید. شید. شید. بفرم بفرق خانمانده سال شما چطوره داره؟ ناصر خان؟ نه که؟ نه بودن اینجا ولی رفتن دو روز پیش با شما قرار گذاشتن پس حتما میان بفرماییم بالا شما میکرام میگه میگه اینو بزن خانم مهندسه چی؟ میکردارم میان بالا وسط این میگونه جمعه شوه میدونم بجام ده جام میم جمع جور کنیم همه به سرعت مشغول تمیز کردن و جمع کردن خونه میشن یکی زرف غذاها رو جمع می کنه، یکی چمدون رو و خونه کمی مرتب می شاهکار شاهکارو امین حسین میرن داخل دستی تا مختی بشن و از پشت در گوش میسن سلام عرض کردم سلام میبخشم مظنمتو شدن خواهش میمنم ناصر خان با من ساعت ده خبر گذاشت اما اگر من مظنمتو نمیشدم نه چون که خیلی آدم خوشبالی هستن انگی گفتن میان که اصلا همین الان پیداش نمیشه شما بفرمایید تو مظنمتو نمیشم خواهش میکنه ببخشید ما چاکی بفهم میتقایش میکنم خیلی ممنون خانم مهندس میخواد بشینه ولی احساس ناراحتی میکنه راحت بشین میخوام ولی یه دمپایی روی مبل بود ببخشید اون یکی دنگش هم اونجا نیست شاهکار جلوی دهن امیرو سیم رو گرفته خونه ما جردیه دیگه پدر بهتر هم؟ الحمدالله بهتر بردنشون تو بخش چه خوب راستی از شما خیلی تشکر کردن من که کاری نکردم اصلا ندارم بخشام کجا قیبشون زده. شما چایی شربتی من میکنی من براتون بیارنم خیلی ممنون زحمت نکشین بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم بابا دارم خفی میشه یه دره باستن راستی قرارداد اجاره کارگاه کارگاهو تمدید کردن چه خوب اون مناقصه یادتونه اونم به این برگردون راستش من از کارکی کردم خیلی پشیم نمد خیالم آسوده شده چی نگه این البته تو اون ماجره منم کم مقصر نبودم بله من تصورم این بود که مدیریت صحیح مدیریتیه که یک کم با خشونت همراه باشه بله شما با خشونت موافقی؟ بله نه خشونت و محبتی که بتونه آدم رو با همدیگه نزدیک تر کنه در باقیم <تصفيق> با محبت و امان <تصفيق> منم موافقم انشاءالله تو پروژه بعدی میخوام این مطلب رو لحاظ کنم چه خوب ولی ما که داریم میریم جدا؟ ولی حیف جوانایی مثل شما از مملکت بیرون برن واقعا البته چه حیفی ما که نه سواد بالای داریم نه تخصصی دقیق حفه اون مغزایی که میره خب بله ولی شما تکنسیان فوقلادهی هستین میدونیم مملکت به آدم مثل شما چقدر احتیاج داره خب بله ولی اگه احتیاج داشت که ما انقدر دنبال کار دو میزدیم اگه کار باشه چی؟ خب فقط که کار نیست کار قرمت اجتماعیه عشقه خب خب عاشق بشین ازدواج کنین کی جلاتونو گرفته ام... شما خیال میکنین من تالا خاسگاری نرفتم کی حاضر با عشقی ها بی عشق زنی دیپرامه ساده بشه هم الان منتظر آدمایی هستن که پول و خونه شونو بشه اگه اصلاب بانکه چاقو چلن داشته باشن که دیگه فرده هم ولی اون آدم هیچ وقت خوشبخت نیست البته حرف زدن آسونه خانم مهنده است ولی اگه موردش پیش بیاد شما خودتون اینجوری دفتان نمی کنی به هیچ وقت امیر حسین میخواد بره بیرون ولی شاکار نمیذار رو با هم درگیر میشه موردش پیش نایمده اگه موردش پیش بیاد شما حاضرین از سفر صرف نظر کنید. رایس و کرن. اوه. شو کنید؟ تو فقط منو نمیذاری. میبینی که تو <تصفيق> چی؟ سی سو فقط یعنی از زن زن ما که تو بخاطر دستارم باشه خانوان بله کار. بالاخره میاد صرف نظر نه ان برای ما دیگه. خانم عربشاهی و جالو و شاهکار و با وانز وارد فرودگاه میشه. امیر بابا. همین که برگردیم خودم یه سله توپ واسات می‌گیرم. سلام باش نشوتش کن نبتر. به که پارسی یاد گرفت. اوکی. تا پیشم میاد. و پیشم مخت تا خودم میدونم همه بغیر از امیر حسین سوار هواپیما میشن و می امیر حسین تنهایی برمیگرده سمت وانت که یه خانوم به شیشه وانت ضربه میزنه سلام آقا سلام حال شما ببخشی مسیح تو از کدوم طرفه؟ اه هر جا کی شما تش ببریم تهران پاس میخوره؟ محلومی چه میخوره؟ بفهم باییم ببخشی من یه سری وسایل دارم اگه اجازه بدیم خواهش بکنم خانوم جوان رو با یه خانوم موزن برمیگرده روی ماما میره و که برمیکردیم دختر. انشالله که پیشی. انشالله آغوش بخیر بشه دختر. سلام مدیر جن. سلام کسیارا. یوتیوب عادی نگاه. این پنده خدا رام سر رابیاده کنید. خدا فرز. <تصفيق> با همین جا رادیو فیلم مجرت ها به پایانش میرسه. فرشاد آزرنی ها سردبی رو تهیه کننده و من آرمان غفاریان نویسنده و راوی رادیوفیلم فیلم امیدواریم که همه جوون و کمی جوون ها و سابقا جوون ها خیلی از جوونیشون ببینن و زندگی سرشار از لحظات زیبا و شاد باشه و دیگه مجرد بین شنوانده خودمون نبینیم ان نبینیم انشاءالله ولی با انتخاب های درست و البته عاقلانه پس این بار فقطتونایی که ازدواج کردن یا نزدیک که ازدواج کنندن یا تصمیم گرفتن که دیگه ازدواج کنندن میتونن لبخند و براموش نکنن دت میش خدا ننگفتن.